بعضی از دوستامی مفهوم کلمه لا اله و محمد رسول الله را چی کردن پرسیدن و بعضی کسا گفتن که اگر در ورزیم یک کمک بر ما یک گرفته شدن تا که ما مفهوم لا اله الله محمد رسول الله را بفامیم و علیت شیه که بسیاری کسا مثلا در این شرایط مالی میبینیم بعضی کسا هستن به مخلوق سجده میکنند. به نام اسلام این فلان فرقست رهبر فلان تایفه هست برازو سجده میکنند میرن پیش قبر سجده میکنند میرن پیش بود سجده میکنند میرن پیش اگه انسان زنده رکوع میکنند سجده میکنند اینجا اصل مشکل دچی چی است؟ اصل مشکل در است که ای دوستای ما، اې کسایی که کاراره میکنند. انا معنا لا اله الا الله و محمد رسول الله را نه ما باید اول مانای اینه کلمه را بفهمیم. شما ببینین فکر کنین حضرت محمد صلی الله علیه و زنده هست. آیا محمد صلی الله علیه و سلم در زندگی خود سوال بود؟ احادیث است قرآن است و حدیث است و انسان باید قرآن بخانه و انسان باید حدیث بخانه تا که دین بفامه اگر امیال در اینمی مجلس ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلام حضور می داشت اگر میگم مطمقیده ندارم کاله است اگر وجود حضور می داشت یک نفر میره برمیفت که پیغمبر خدا ما میخوایم بر تو تعظیم بکنیم بر تو سجده بکنم آیا پیغمبر خدا اینو قبول میکرد در زندگیش مردم صحابه اومدن گفتن ای پیغمبر خدا بر ما اجازه می تیم و ما بر سجده کنیم پیغم بست سلام برز گفت که نه اگر سجده جایز می بود من چی می, چی می اگر سجده جایز می بود من برای خانم ها می بخواه بخواه که شما بر شبهرهایتان سجده بکنید ولی من بر خانم ها امیره نمی یعنی به خاطر ازی, از ازی که خانم ها بر خود احترام بکنن من امیره نمی‌گم. معنای حدیث شریف چی است که یعنی سنجاکردن کردن غیر ذات الله جل جلاله به کس دیگه جایز نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلام خودش کسرا اجازه نداده در زندگیش که سر خو تعظیم بکنن. پیغمبر سمی میگه که شما بگین سبحان ربی العظیم. تعظیم فقط به ذات الله جل جلاله بکنید. مسلمان ها وقتی که در حبشه رفتن در حبشه دیدن که مردم به او پاچه های حبشه چی میکردن؟ تعظیم میکردن مثل که ما شما در سبحان ربی العظیم استاد میشه. وقتی که پارچه ها داخل شد کلگی رفتن به تعظیم اصحابی که در حالت بسیار سخت قرار داشتن ده دا حالت قرار داشتن که از وطنشان مردم کشیده بودشانه و در اینجا هم آمده بودن که یار جای نده و پاچه هم مسیحی هست یا آمده بودن که اینجا پناه برن که چند وقت قناعت میکشیشانه پیش ازی پاچهایی که چی خودش مسلمان نیست مسیحی است اهل کتاب است لکن مردم مسلمانه پناه میداد رفتن پیش ازو و آل فعلا در قصر زو قرار دارن آلتشان بسیار خراب است. و قرآش نمایندهای خودم روان میکن از پشترشان میکن که پشترشان اینا را اونجا هم نمانه کل اگه تعظیم کردن بری پاچه رواج است لیکن مسلمان پشت رواج نمیگه در براده رواج, رواج یک چیز است رواج یک چیز است و دین و عقیده چیز دیگه است کسی که مطابق رواج خود دینه پیش میبره او متدعیم نیست او مسلمان نیست خدا دینش قبول نمیکنن اینه این مردم ها وقتی که آمدن در مقابل از این دیدن که کل لگی دید که کل لگی به تعظیم رفتن مثل که ما شما سبحان ربی العظیم میگیم مسلمان ها تعظیم نکرد استاد بود پاچه های حبشه پرسانشان کرد شما شما تعظیم نکردید بر ما رسول الله صلی الله علیه و وظیفه داده و یاد داده و قرآن بر ما نازل شده قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و میگه که با غیر ذات الله جل جلاله به کسی سر تا پایین نکو حتی با پیغمبر سجده نکو بر پیغمبر رکو نکو یفسیس حق دین تان حق میکوشی ما از چار ما را میکشی یعنی دین دان حق سجده و رکوع به ذات الله جل جلاله است ای اینم سجده کردن به الله اینم رکوع کردن به الله اینم دست دعا بالا کردن فقط به الله جل جلاله اینمی عظمت الله را در قلب جای دادن اینمی مانای کلمه لا اله الا الله هست اگر ما و شما قرآن عزیمشان درست مطالعه کنیم و بخانیم در کل قرآن میشان بر ما میگه که وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ سماواتی السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اگر از مشرکین پرسان میشد از ابو جهل، از ابو لحب، از امیه ابن خلاف از بزرگان مشرکین، از کل مشرک پرسان میشد. این ان هم من خلق السماوات والارض؟ قرآن بر ما میگه او برادر بیاین ما دین خدا، عقیده خدا، کلمه خدا از قرآن یاد بگیریم. از برای خدا یک نفر میخیزه و نیابت از دین گپ میزنه، یک روز قرآن درست خوانده نمیتونه، تو چطور از قرآن گپ میزنی. درست است. مثلا من استاد پانتون پا هستم، لكن ما حق ندارم که بخیزم بگم که من استاد انجینری هستم، انجینری درس میتونم. تخصص تخصصم می ما ولات بام درس نمی بخیزیم یک دفتر واسه کنم باو اینکه اینا بیان بودازی به شما من با تن‌پوشکاری می کنم من با کشکاری کردن هم میتونم انالخار کسل تخصصش است حالا ما چرا در رشته و تخصص خودی حسین است که پدرم شیخ بود پدرم خوب آدم بود لکن از پدر خود علم خود انتقال نمی کنه تو باید کتاب بخوانی قرآن بخوانی قرآن میگه والا انسان تهم من خلق السماوات والارض والا این و اگر سألت هم اگر پرسان کنی ای محمد صلی علیه و وسلم از مشرکین هم بر مشرکین راجز یعنی گفت اگر از مشرکین پرسان کنی من خلق از سماواتی والعرک آسمان زمین که خلق کردن لگه الله میگن الله خلق کرده. ها؟ ها؟ امی آیت روزی اولی که ما خودم خانده ما ایران بودن اوی مشرکین میگفتن که آسمان زمین خدا خلق میگن بله قرآن بله میگفتن ایران هر <تصفح> های وقتی که میگفتن که خدا را مشناختن می و میگفتن زمین و آسمان خدا خلق کرده، ای خود ما میم ما چرا مسلمان هستیم خواهی ها مشرک بدن باز آمده ما دیگه را خوانده که تواف میکردن که بله تواف هم میکردن نماز میخوانن ولی نماز هم میخوانده پرسانشان <تصفح> <بلی نمازم میکنن. تصفح> میکردی باقیده که دی زمه باقیده ابراهیم علیه سلام هستم عقیدش عقیده ابراهیم علیه سلام نماز می خواهد توافت میکنه، زمین آسمان هم می گی خلا رفقی براتان می ده الله خی بین ما و بین عظیم و شکر چی فرق دود خی چون خیستن در مقابل پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گفتن اونا در مقابل لا اله الا الله خیستن خای یک نفر که بوئه که آسمان از خدا پیدا کرد زمین خدا پیدا کرد رستا خدا میده ثواب میکنه نماز میخونه خای ده مقابل لا اله الله چی مشکل دارن گفت مشکلشان در مقابل لا اله الله این بود که اونها میگفتن که نه الله وجود داره الله وجود داره ما عبادت به الله خداوند عبادت میکنیم لکن اینا میگفتن که در پالوی خدا دیگه معبودای خرد و کوچک هم وجود داره میگفتن ما نماز میخانیم بر می خدا ما سجرمه کنیم بر خدا ما میگیم که خدا زمین و آسمان خلق کرده کلشم میگفتن الله میگفت ما, ما ایمان داریم ما مشکل نداریم اما مشکل تان چیز گفت ما نظر خدا میبریم پیش حوبل ناظر میبره پیش هوبل چرا ناظر پیش هوبل میبری گفت صاحب هوبل ایلاتی مناتی 360 بت بودن یا کل دوستای خدا بودن شخصیت‌های بزرگوار بودن اولیا الله بودن پیغمبرو بودن حتی در تاریخ میخیل صاحب است روز مخاندم دمی کتاب الرحیق المختوم که امو, امو،, امو، چی که بسیار اعطای ر کنفرانس کشورای اسلامی را گفته که این کتاب بسیار قوی و معتبر و دقیق است و جایزی مومی گرفتن گفت که حتی روزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم salam در مکی مکرمه داخل شد بوتاری که که چوب خود پایان انداخ گفت دو مجسمه بود یکی مجسمه ابراهیم علیه السلام و یکی مجسمه اسماعیل علیه السلام در داخل کعبه مانده بوده مابدن ابراهیم هستم ما اینسر تصویر ابراهیم علیه السلام اجور کردیم مابدن اسماعیل هستم این نماز اسماعیل علیه السلام هستم. ما کافر نیستیم ما بدین نیستیم ما ختو نیستیم خجچی میگویند خئی بوتاش است این دوستای خدا هست این دوستای خداوند شفاعت ما را میکنه پیش خدا پیش از این دوستای خدا میگیم که این دوستای خدا ما را و خدا نزدیک بسازند لیقربونا الله چرا خدا دور است؟ خداوند گفت فايدة سالته عبادی علیه فايدة قریب خداوند بر شان گفت که الله صامت، او مردم الله بینیازد است. از چی بی نیاز است؟ از چیزهایی که مخلوقات با او نیازمند هستند مخلوقات به چی نیاز دارند؟ اگر تو پیش یک رئیس جمهور میری پیش یک چون میری تو مجبور هستی که چون رئیس جمهور در قصر چهار طرفش پایرا دور استرا مجبوری پیش سکاتارش بری مجبوری پیش بادیگارش بری مجبوری پیش رئیس دفترش بری از این خاطر تو مجبور هستی از طریق واسطه ها خدا برای جمهور برسانی خداوند گفت که من الله الصمد هستم خداوند بی‌نیاز است من ضرورت به این ضرورت به این معاون ضرورت به با این ندارم خداوند ذات ذوالجلال است فا اینی قریب وقتی که بنده های مدباری من بکنم من خودم به بنده خود نزدیک هستم ورا از جامور گپترا نه مشنوازی خاطر مجبور هستی از تاریخ بادیگارد و تراپشش بری وقتی که میگه خداوند عالم الغیب و شهاده هست خداوند عالم غیب است و شهاده هم غایب در قلبت وقتی که جاست چرا چیخ بزنیم الله الله یک دل داد دا سال پیغمبر دا اجرا جهاد کردن وقتی که ما صدا کرد الله اکبر الله اکبر چیخ زدند میرفتن پیغمبران باشون گفت که اربها و الانفسکم سر نفس رحم بکنید شما ذاته که کر باشه دور باشم عیاز بله خب عبادت نمیکنیم خداوند مطال که دمیق قلبت گرد بزنی آدمی خیبست میفومد دمیق قلبت هم که بگید لا اله الا الله در دلتان بگرداری آیستایست هم بگید خداوند میفومد اینال اینجا ایبوت ها را ایش از شخصت ها را ما عبادت میکنیم اینا ما را به خدا نزدیک می‌سازند خداوند گفت که من خودم نزدیک هستم المل نزدیک است موخ بندی خانه پرپلاو. الملزی خودم نزدیک است بر تو ایذا سال کعبا دی عنی فانی قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلی استجیب لی و الیؤمنو بی. وقتی که سوال کرد های ما در مورد من فانی قریب ما به بندی خود چی استم نزدیک است. در سوره قاف قایط شریف دیگه میگم من حبل الوی. خداوند برای انسان از شعره اگر گردن این شعره گردن چقدر امروی تو نزدیک است خب خداوند در نزدیک است گفته ها می فهمن. مشکل تا درک میکنه ده قلبی چیزا بگردن خداوند ذات کریم هست چرا خداوند ذات کریم است میگه فرق بین سخی و بین کریم است که سخی بود ازو که از پیشش بتل میبره میتا لكن کریم که اش نتل میبره تو نگفتی خدای دو چشم تو تفل بودی. خدا دو چشم بده تو تو خود بودی خداوند چشم داشتون ضرورت داشتی نگفتی که خدای بر من قلب تو خدای تو دیگه میش تا جوان میش بود دعا میگیدی بعد قلب میداد گفت خداوند ذات کریم است از پیش ازی که تو دعا بکنی خداوند ضرورت های تو داده کریم پیش, پیش از که تو بخوای برات میده خب اداسه علک عبادی انی فا اینی قریب اجیب و دعوت اددای ادادهان من دعای دعا کننده را اجابت میکنم فالیستجیب لی ولیؤمنو امی. پس اومردم خیلی وقتی شما دعا می کنین پس اجابت ما رو بکنین به ما ایمان برین خداون میگه پس به ما ایمان برین تو خوب به ما ایمان نداری چرا به ما ایمان نداری ما چرا وقتی که بفهمم کارم پیش می آخیل بند است و می فهمم که یادام بسیار مهربان است چرا ما بروم قایصه با واسطه کنمم کار تو خیر ص قربان که تو شوم قربانی لنگیا که داماتی تو بگی چیکو پیش میرخیل صاحب برو و بگو چیز که بر من تو واسب تشو میرخیل صاحب بر من مگه, مگه, مگه چرا یک قایل را وردی؟ چرا یک قایل را وردی؟ نهیم صاحب به خود استاد ما به تو مهربان ندونم؟ نمیتونیسی مستقیمن پیش ما بی؟ نمیتونیسی مستقیمن پیش ما آیا از مکده این مهربان تر بود؟ خدای عز و در روز قیامت از پیش ماوتو مو... پرسان میکنه من نگفتن که من رحمن هستم من رحیم هستم من غفار هستم من ستار هستم چرا پیش ما وقتی من رحمان رحیم بودم چرا پیش کسی دیگه رفتی چرا من نزدیک با... گفتم من شعره گردن که بر تو تر هستم عقیده که طفل بر مادر خود داره همین عقیده اگر یک مسلمان به خدا داشته باشه موحد است یک طفل مادرش 10 دفعه کت سیلی باز پس داغوش مادر خود میره کی میره پیش خارم امصا که بو خالجان تو بیا که مادر مرا لط میکنه. کدام طفل رفته پیش هرقدر مادرش میدانه پس در دا داغوش مادر میپرده مسلمان حقیقی نمیاد که هر قدر خداوند از تو امتحان میکنه پس به بارگاه خداوند متعال جل جلاله رجوع بکنه اینا مشکل چی بود از مشرکین مشکل مشرکین بود که ما ش... ما برای خداوند فلانی شافی را شفی میبریم تصویر ازیده جور کردیم مجسمه را جور کردیم مشرکین بعضی از بطهارا چیز کرده بودم بعضی ها می در قبر می ما قبرش اینو می در قبرش سجده می چرا سجده می گردم میکرد. خاطر از اینکه شخصیت بزرگوار است وازگفای مرئی به خداوند متعال برسانه ما شما وقتی که قرآن رو و حدیث رو بخونیم با دوزون می فهم که لا اله الا الله یعنی چی مانه لا اله الا الله ببینین لا اله یک عبارت است الا الله عبارت دیگه است. لا اله ما چی که این درست کسی کلمه را میخونه این قسم بخونه که لا, لا اله ها. لا, اله لا نیست. نیست. دمی نیست دمی نیست کی داخل میشه نیست دمی تمام مخلوقات نفیه کن نیست هیچ پیغمبر نیست هیچ ملائکه نیست هیچ دوست خدا نیست هیچ دشمن خدا نیست هیچ انسان نیست هیچ حیوان نیست هیچ جن نیست هیچ چیزه لا نیست الوهی معبود که برای زو عبادت بکنی برای زو سجده بکنی نیست قلیما میگاد که حیوانت کلمه میخوریم چی معنای کلمه ممکن کل از یارا نفی می کنیم نیست هیچ کسی اله را میگن الوه معبود میگن یعنی <تصفيق> کسی که ما او را عبادت بکنیم کلش باید نفیه بکنیم کلش نفیه شدم هیچ کسی قابل عبادت نیست هیچ کسی شایسته عبادت نیست هیچ کسی شایستی سجده کس کس نیست هیچ کسی شایستی رکو نیست هیچ کسی شایستی دعا کردن نیست که برای این فلانی جان بر ما یک کار بکن کلو ازیار را نفیه بکن الا الله ایلا را علما میگن شما علماء متخصص نحوی را پرسان بگویم میگن ایلا عدات استثناث استثناث چیزای دیگر کلش اوزو میگنی یک ذات استثناء کرده خداوند متعال جل جل هو. و میگن ادات حصرن یع عدات, عدات است که وقتی که در چیز آمد فقط اونمون شامل بشن. خود خداوند مطال پیغمبرستان تمام روز دی بازار میره، این طرف میره، رفت از اون نفر می رفت دا داخل مسجد دخوانی دا خود جه کل مردم هم می گفت اولین سیزده سال عزت محمد صلی الله علیه و سلم منطقه, منطقه گفت که گفت قولو لا اله الا الله تفلحو او مردم بگن که لا اله الا که فلاح خیئی مشرکی که خدا رو مشناخ دو عبادت میکردن لا الهه الا الله نمیکردن گفت نه جنگ ازنا بزد لا الهه الا الله جنگ ازنا بزد چه بود لا الهه الا الله چرا زد لا اله الا الله جنگ کردن خدا را رو مشناخ دو بخاطر ازی کسی کر فرمول فرمول ایاد بگیرن اقیدر یاد بگیرن یاد نگیرفتی اقیدر درست نشد در فارسی مثلا ما او میگیم دو جمله دو جمله در فارسی میگیم در فارسی میگیم که اعمال در مسجد است اعمال در مسجد است ائمل در, در مسجد است این که برای ما کرده میتونه که چی فرق از بین دو جمله فارسی این داریم بر شما دو جمله میگم خب گوش بگن از جا ایمل در, در, در مسجد است در از، از... یک جمله جمله دومی که هیچ کس بغیر از ایمل در مسجد در نیست, نیست. که میتونه برای ما کنه؟ جمله که ایمال در مجید از جان در مجید اصلا این که مانا میگه کسیدگان مطمئن است و کسیدگان خاصه مالا کرده اون مفهومه گرفته که اون مال است تعریف نگرفته که دیگه کسما است شاید باش اما بار ضعف دوم که گفتی که کس نیست تن مال است یعنی مانا کی کس نیست تن فقط ایمال است خب استاد اگر مثلا تو سر معلم مکتب هستی نه؟ ما بر میایم که در صنف هیچ کس در مکتب در مکتب ایمل در صنف شما باتا گزارش میدم میگم می گم سرمارنس ایمل در صنف هست و جمله دیگه برد میگم که هیچ کس در صنف بغیر ایمل نیست چی می از دو جمله؟ جمله اولی رو می که این ایمل حاضر است دیگر رو شاید حاضر باشد اما زمانی که می بجوز ایمل کس دیگه نیست معنای گمی است که تنها ایمل آباده دیگر رو نامده اینی گفت میم این جمله میم که اعمال موجودن، اعمال موجودن، عربهام میگن اعمال موجودن، اعمال است اعمال موجودن في فصل در عربی، اعمال در صنف است. این جمله با این جمله دیگه چی فرق داشت وقتی میفتیم که لا احد الا ایمل هیچ کس نیست بغیر کی که مشرکین که الله موجود هست مشکلی نیست چی میگن؟ الله موجود است. یعنی الله وجود داره. در پالوی الله کسای دیگه هنگ استن بود دوستای خدا هستن، سکرترای خدا هستن، دوستای خدا هستن ما را و ما نعبدهم الله و یخربونا الله الزلفا ما اینا را عبادت ما ای را رو عبادت نمی‌کنیم به خاطر عزیگی ما میرم پیش ازی بت‌ها چون ما یا ما رو و خدا چی می‌کنه ما رو نزدیک می‌کنه ما روی سیاست ما شرمنده استیم ما بیچاره استیم خدا اعمال ما رو قبول نمی‌کنه از این خاطر ما میرم پیش ازی بت‌ها باز این بت‌ها را وقتی که میگیم باز بت‌ها اعمال ما رو می‌گیرن بر خدا میبرن اگه خودشان طانستر حل کنن مشکل ما رو خودشان حل می‌کنن اگه خود رضا مشکل است اگه باز کلان بود به خداوند اینی ما رو باز این طریق به خداوند نزدیک می‌شه پیغمبر آمد گفت که بگوین که عزرت محمد سن وقتی که خب این کسایی که اینجا بودن کلچان هم خدا موجود است خدا موجود است خدا موجود است عزرت محمد سن مجرد که آمد او است زبان خوب می گفت که هیچ کس قابل عبادت نیست بغیر از الله دار ندفه شورای عالی استراری جلسه استراری گرفتن گفت می کی چی میگه محمد صلی الله علیه و سلام گفتن چی میگه گفت این میگه که 360 بتا نفی کنین نو هبل نو لوت نیست الله میگم اگه بغرض الله ما 360 دونه بوته ما رفتین تو فلانى بوته اس فلانى منطقه اومدیم از یاقوت بود دست نداش بازوس شام از سلاجر کردین آل سبی بوته یاقوتی بود یا و دست ایره. این ما الهابتیم و این 360 بوته را الهابتیم و این خدا را که باز ما مقرب میگنه و ما پیش از دوست زیر پاش گوسفند دلال میکنم باز خونش ده چیدکش میچسپاند نه زیر پایا بود و سنگ میزدن و پیش فلانى زیر پاش مرده حلال میکردم مالیار کلشان ایلا بتیم و فدرها و پدر کلانهای ما کلشان ایکار رو میکردن آلما بخیزین کل تاریخ آبایی خود فراموش کنیم تاریخ اجداد خود فراموش کنیم یه کس ملا نبود یه کس فامیده نبود یک تو عزت سر ماست تو خدای خدر خیلی سنسان از این جنگ شروع کردم بزید که بزید خب وقتی حالت است. امروز عین نگه به بعضی مسلمان ها میزنن، عین جا کی میزنن؟ بعضی مسلمان ها میزنن. یک کسی وقت پیش میاد، امی کل لقابات خوش میای، ولی گفتن توام خوش میای، و سی دی روی توام گرفتیم، فلانی روی توام گرفتیم، فلانی, گرفتیم, فلانی گرفتیم، اول سی دی روی توام گرفتیم، اگر من نترم میگذاره دیگه. هه؟ فرق کردن که ازی سی دی است، یا اگر فیس بات دی میره. کاش کت رو جوان خواست نشد وارم اک پیسادی؟ در مقابل سری و در مقابل درس. دیگه گفتم مرد کس مایه میگوشت؟ چند شما از این چند ماش میگیرین کی به شما د تأمیل میکنن؟ ما تو ما د هم یک نار پیدا نشده که تأمیل کنه. حالا که پیدا شد بیای پیششی کنی بیت؟ من راهال گفتم تو تأمیل کنی. دوستی یک 500 دلار در مقابل درس خوبه؟ هم خورما، هم ساو. وقت تابلو گفتم تو جوان نهیدیم که وارم آت تأمیل منویل کنی. تخریب نکن از پایین میلستی رد تغريب نکن تغريب خوب سه کلاگاپاید چرا کلاگاپاید خوشم ه؟ امروز نتیم هم کدم تا دیگه خوش شوند از کامری شوند ترف خو؟ یک بغله ولی امروز فیلم آوردی میکنی؟ خب کلو گفت بایید شما ما چی گفت با گفت مثلا ما میریم اکبشید دوست خدا در قبر یکی از دوستای خدا میریم اینچه سجده عبادت نمی کنیم سجده احترام میکنیم میریم سجده میکنیم رکاو میکنیم مثلا این کار را میکنیم دیگه یاد یکی نقص دارم یکی نقص دارم مفتون بردار عزیز فکر کنیم مر... محمی الان میجه باشون این همون نفر نیم به مان این تو هستم اگه تو بیعی برای مر کنی مان بین بلیانس خدا برای مر رو کو نکن مره خدا نبر تو چرا کرده رو کفر کفر است مکر رازی شام که تو برای مر کنی ما رازی شام که تو برای مر سجده کنی مر خودم چی شدم تو خود رفتی خب ما رو کدی چی کدی؟ مر آف کدی خرق کدی برمن برای من حتا کسی که برای من سر خدا پایین میگه نمی میره تا برمن تعظیم نکنید عظمت ذات الله است من خودم 234 سبحان ربی العظیم میگم تو برمن چرا می کنی بعضی وقتم تره اجازه می نه سجده می کنی اجازه تام نه گفتم اگه شالایی کنی تو سیلی کشوت کنم که دیگه زندگی طرف ما تاور نکو برمن خود سجده می خب گفتم من بسیار خوب قوی ایمان دارم و موحید استم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان ابن افان یا علی ابن عبی طالب یا ابو حریره و یا مثلا حسن و یا حسین و یا فاطمه و یا بلال حبشی اونها کسانی بودن که اگر ما تمام عمر نفس خدا بکشیم به خاک پایش نمیرسیم مگه تمام عمر زامد بکشی به گرد خاکی که در جهاد اصحاب بدر در خاکه شده اما خاک گارد که شد اوج اما قطری خاکی که در روی از اینا ریخت عروق تمام عمر عبادت ما را که کفایت میکنه من این قسم میمان قویدونم که تو را نه میمانه که بر ما رکوع و سجده بکنی چه تو یک دوست خدایی که از مکذا در ایمان و در عقیده قوی است و خداوند متعال از او راضی شدن و موحد بودند کدام موحد اجازه میدهد که یک نفر بخیزه بر از رکوع بکنن سجده بکنن گفتم نشه نشه که در روز قیامت برای هر کدام انسانی که تو سجده کردی در روز قیامت یک مسیحیات قرامش کاشیت کنه برقم شو۔ شما را کدام, کدام بدین فکر کرده بودید؟ من مردم دعوت میکنم بیا مرا عبادت بکن. گفتم در روز قیامت خدای عزوجل خودش گفتن این مسیحیایی که حضرت عیسی علی السلام بتوشا جور کردن، کالایشان درست هم برش نپوشوندن، این رسگوشا در دیوال کلیسا در دیوال کلیسا و رویزون کرده، خداوند متعال صداش می که یا عیسی در مقابل کل مخلوقات به قابل کل مخلوقات یا عیسی برش میگن یه مثل یا عیسی بن مریم ا انت قلت لنات ست تخیزونی و من دون الله الله از عذرات عیسی سوال میکنه عیسی تو که پیغمبر بودی این میلیون های انسان هایی که خود جوش بود شد تونی بلیر و فلان و که میگن که ما پیروهای تو هستیم یک تیزه زنهایی که در افغانستان می بنامه مشینرز they are working in افغانستان we are مشینرز for Jesus Christ یک کسایی که میگه دعوتگرای Jesus Christ یسای مسیح هستیم کل دیار اصطاد می کنم میگه خود تو دخترک که راهبه هستی و تو راهب و راهبه و فلانی و پاب جان پال و پاب بندکیت و فلانی تو بیایی کلتان ایجا اصطادشان کلشان استاده هستن الله جل جالهو در قرآن ازی بشان ایساعلی صلی الله خودش استاد میکنه. اگر آنتا قلت ل الناس اتخاذونی و امی الهین من دون الله ایسا تو گفتی بر مردم که مرا و یا مادر در مرا خدا بگردن و از الله جل جلاله او یافتی استاد. تو اما اشیا فهم کاش تاید آخرين آخری آخری سریمایی خوب, خوب گوش بگید عقیده قرآن عقیده قرآن است کتابی که دست نخورده قرآن عظیم و شان است ما مکلفیت داریم به قرآن ما مکلفیت ندارم که پدرم چی میگم مادرم چی میگه پدر کلانم چی میگم مادر کلانم چی میگه او خو مشرکین مگفتن که ما دین پدرای خود ترک میکنیم نه مسلمان میگه پشت نام پدر چی میگردی پدر خشو اگر مردی پس شنام از نگر خودت عقیدت قوی و درست بساز و خودت از او استفاده بکن اینه آیت یکصد و شانزه سفاره حقتم سوره مایده خوب گوش بگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال الله یعیس ابن مریم ا انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله میگه در روز قیامت خدای عز و جل عليه علیه سلام پرسان میکنه و اذ قال الله و یاد کن وقت را که بگوی الله جل جاله یا عیسی ابن مريم ای حضرت عیسی بچي مريم خوب نام و مادرش مادر شهر دوش هم میگیره ای عیسی ابن مريم انت قلت ناس اتخیذونی و امی الهین من دون الله تو گفتی که مره و مادر مره دو خدایی بگیرین بغیر از الله جل جاله تو گفتی عیسی علیه السلام چی چواب میده قال سبحانك. عيسى عليه سلام با بیشت تواضع میگه خدایا پاکی مر تو راست. ذات مقدس و پاک تو هستی. ما یکون لی ان اقول ما به حق. بر من مناسب نیست که من چیز بگم که من حق ازو ندارم. من پیغمبر هستم لیکن ای حق من هستم که ما کسر که بیا بر ما عبادت بکنید بیاییم بر ما سجده بکنید امروز کسایی که ای, ای حق بر خود میتن و مردم هم میگه بیا بر ما رو کو, کو, کو بیا بر ما سجده کن ای حق بر خود میتن به خدا در روز قیامت دلیل میشه و او کسایی که پیش از این مردم هم بیرن و خودم بی پرتنست و جمعه کنن بازی ها دیگه چی میگن باز میگه کسایی که رفیقا و دوستای ظالم و جاهل و بیدین داره که گمراه کردن باز میگه یا لیتنی ای کاشی قاریسای و رفیق خود نمیگرفتم یا لیتنی بازی لیتا، این در میگن که ای چیستن؟ یک است که ناشده است یا لیتانی لامت تخیز فلان خلیلی ای کاش ما فلانی فلانی سایبه که مرگو بیا برما سجده کن بیا برما رکوکو بیا ما تعظیم بکن یا لیتانی لامت تخیز فلان خلیلی لقد اضال لانی آن زکر ای خو از دین گمراک دا احت شریف دیگه مگن بگه خدای ایر داد دوزخ برد پیروچی میگه راهبر خدا میگه می خدای خوب دنیا خوب خوبه متو خرخش کن که این مرا بگیفتس بخو جان بخو بف نافم بخو صاحب نهفم دم قرشی ولی این علی ظالم خان خراب صاحب اومد پشمرد کتریش سفیر خود چرخ میزنه ناچ میری بنام دین بنام دین تو می نچ بنام دین بنام عقیده بنام اسلام خب مزیار عیسی علیه السلام و اصقر الله يا عيسى ابن مريم ا انت قلت للناس تاخذوني و امي الهه اين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق گفت خدایا پاکی مرتراس بر من اين مناسب نبود که من چيز رو برامردم بگم که من حق نداشتم يعني یعنی براي از اونها ميفهمونه که من پيغمبر هستم اي امت محمد صلى الله عليه وسلم سلم پيغمبر حق نداره که كسربوي براي من سزا كو بر حق نداره کس رو که برای ما و پیغمبر ای کار رو نمی کنن پیغنبر است نمی کنه برادر چرا سر پیغمبرای خدا تومت میکنیم سریعه انسان معصوم باکه که خداوند اونا و الله یعصیم و کمینا ناز خداوند اونا معصوم قرار داده از مردمان پیغمبری جا پیدا نمی‌زنن میگن خدای خود ولی خدایان چرا حي سوال میکنن بعضی ها میگه خب حضرت عیسی علیه معصوم پیغمبر خدا و خدای عزوجل هم میفهمید میگه به خاطر ازی که امروز این کسانی که عیسی علیه السلام است سجده میکنن این می کسانی که پیغمبر ها را سجده میکنن این نمی که پیش جنس سجده میکنه این نمی کسی که پیش رهبر خود پیش پیر خود پیش شیخ خود پیش مولوی خود پیش فلانی خود سجده میکنن یا در روز قیامت پیش ازی که دوا کنه اینجا اول از کی پرسان میشه؟ از اونمو شخص اول پرسان میشه که آیا تو ای می گفت میخواستی؟ اگر میفتیم ایسا علیه سلمش میکر انکون تو قلته فقط علیه شه خدایه اگر ما ایسا خرمه گفتم تو خب میفتیم؟ اگر ما کسرا گفته باشم بیا بر سجا کن؟ اگر ما کسرا گفتا باشم بیا بر من. اگه ما کسی را گفته که بیاد پیش قبرم، ما بر ما دعا بگو بر من بچرخ. اگه ما, ما گفته باشم خدای تو خوییم. تعلّم ما فی نفسی، ولی اعلم ما فی نفسی. خداه. چیزی که در قلب ما هست، در داخل ما هست، خدای کشور تو می‌فهمی. ولی اعلم ما فی نفسی که با خداه ای که تو علم چی قدر است و چیزت من همیش. چیز که تو میفهمی؟ من نمیفهم اینجا اقرار میکنم بعضی کسا میگن نه فلانی بغیبه میفهم فلانی بغیبه میفهمه اینجا خود پایقام اقرار میکنه خدای چیز رو که تو داری تو میفهمی من نمیفهم از مرا تو میفهمی تو خدا هستی اما من نمیفهمم خواه اینکه انت انت علام الغیب خدای خدا تو هستی حلام الغیوب یعنی بسیار عالم هستی به امور غیبی ای پایی که اینا میزنن چیزایی که در میگن کارایی که اینا میکردن خدای ای براعت خود از کل کارشان که نه پاپ جان نه جان پال جان نه بندک جان نه فلانی جان ایگر من ها گفتیم شما تومت کردین سر خدا تو عالم غیب هستی تو بسیار غیب میفهمی. تو خواهد ما با خبر استید ما قلت لهم الا ما امرتنی بیهی انعبود الله ربی و ربكم. نگه من برشان نگفتم مگم چیزی که خدای تو بالای من عمر کرده بوده که عبادت بکنین ربی پروردگارم و ربكم و پروردگارتان را یعنی خدای من هم الله هست خدای شما هم الله هست خدای تمام پیغمبر الله هست پس بین که فقط ذات الله را عبادت کرد. من همی کفت و کنتو علیهیم شهیدم ما دمتو فیهم خدا تا وقتی که من در بینشان بودم امی گفت توحیدم بگفت بشان سجده به الله بکنین رکوب به الله بکنین دست دعا با بارگاهی الله بلند کنین بر کسی دیگه دست دعا بالا نکن اینه می گفت بارم تا وقتی که من زنده بودم و در بینشان بودم ما توفیت این وقتی که تو مرا از بین هزینا برداشتی دیگه من در بین این انسان ها اون ان در راقیب والایم خدای تو مراققبشان بودی حاللب شما تو خوب در میفهمامی. تو میفهمی که چی تا سایز چی جنایت هایی کردند؟ بند تعلاک شین شهید خدایا تو بر همه چیز آگاه هستی و شاهد هستی و باخبر هستی و میبییم. اینه میخوسم که حضرت عیسی علیه السلام سوال میشه اینه میخوسم اگر یک کس بخیز حضرت محمد صلی الله علیه سلم هم سجده کنه هم به حضرت محمد صلی الله علیه سلم روکو کنه هم بره پیش پیغمبر روی پیغمبر خدا بره ما بچه بت بت بت بچه دختر بدی دخت فلانی بدی عزت محرمان سلام مقابل متخوسات میشه عین کفازتی صلی الله سلام تکرار میکنه که خدایا مژات موحد بودم این قرآن کلام تو شهادت میده و بر برما که بگوین که عبد الله و رسول پیغمبر صلی الله علیه و بر امت خود گفت که ای مسلمان ها لا تطررو کما اترت النصر عیسی ابن ماریم. شما زیاد مرا توصیف نکنید لیکن از جانب حضرت عیسی پسر مریم از زیاد توصیف کرده زیاد خیزک نذارید این موی دراز دراز که صاحب ما دولت پیشونه صاحب ای امامات سبز بزرگ زمین و, و سبز اخ... کلش مردمای و هستن که از قرآن به خبر است. من از توصیف چی بگم؟ دو کلیمه بر می‌پردازد. این ما. دوباره ای که عبدالله و رسولو. دلخواه قهرمانی بسیار بزرگ است. از عبدالله و رسولو هیچ رتبه بلندتر نیست، نه بلندتر است، نه ریاضت جمهوری بلندتر است، نه کدام مقام دیگه بلندتر. لا اله الا الله و اما وقتی کلمه میخوانی نف یه در فکر داشته باش یگانه که میسید از به گفتم چی گفتین چی گفتین فکر بدی یک دفعه صیب خان یک دفعه صیب خان بوکل لا اله الا الله نیست هیچ ملائکه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 عاجر کسی حدا کس نمیکنه یک سنگ است حضرت عمر دلتalonو اومد در پیری قویداشت باز گفت که این سنگ است تو یک تا سنگ سیاه هستی والا ما به خاطر که پیغمبر خدا ترا ماش کرده یه روز یک ماهش میکنم مثل خودم مثلا سر اولاد خودم ماش میکنم می تو نبر می من ما نقرا سن نمی تنی نظرها رسوندن ما سلمان عاجر لا حدا کس به خاطر اینکه روی وحدت بکنه کسی نمی کنه اینا کل از اینو یا کدام جن باشه بسیاری کسا برای جن بزیار هم تو جن دلشانه بورده گرفتار گرفتار عاشق جن است جن چیست؟ یک روز ما ایک جن را دیدم در ایک جای کت یک نفر جن بود من گفتم مسلمان است یا گفتم ایلا بودی بیشانه گفتم به خدا در روز قیامت مکرد استاد مشم بازه پیش خداوند استاد میکن گفتو <تصفح> بزیار کلامکاری میکن مردم ما؟ ولی خد کرم نابنی آدم گفتم بانی جن خدا گفتم ما کرامت داریم یا تو داری, مقرد داری. خدا گفت گفته که ولقد کرمنا که بنی آدم آنو کسی شادیر فرسش میکرد و میگه نه خدا را کرمت ما رو ندارد شادیر داده ولقد کرمنا بنی آدم الله تعالی میگه که ما کرامت داریم بنی آدم تو رو خدوان ذات کریم پیدا کرده با کرمت پیدا کردن این پیشانوی با کرامت تا بغیر از ذات الله جل جالهو به هیچ کس پایین نکن تا کرامت تا کنی اگر یک نفر میره پیش شادی, شادی. کلی خود خم میکنه پس چی, پس چی شادی خود چی شادی روی از خود خود چی کرد؟ بالاتر اگر یک نفر برای سجده میکنه گمه از خود اگر برای یک انسان دیگه میکنه ایجه ایجه ایجه سجده کرده برادر چیزی که تخصیص خدای عصب و جل سجده بر الله رکوع بر الله دعا دست دعا برای خدا ادعونی از برای خدا, خدا. ادو دعا کنه نی؟, نی یا اینجا یا زبان رو یا یای متکلم است بر یک نفر یای متکلم بر چند نفر است خدا هم دفته که ادعو نی دعا که می کنید به ما دعا بکنی یعنی دست دعا بگید که یا الله بر ما بچه بچه یا الله بر ما اولاد بته یا الله ما مريز است یا الله ما مشکل دارم یا الله بشکر دیگه دست دوارة بله چون قرآن خودش گفته دار خوراک آمر میکنن که او دعوی میکنه دعا فقط با ما روکری دعا ای بادات است انال دارا ایلاه الله اول بخش چی میگیم لا ایلاه کلش چیکردن نافی کردن تمام مخلوقات هیچ مخلوقی شایسته عبادت نیست چیزی که نامش عبادت است فرسان و علما بگو اینی کار عبادت است بله اینه بکی می‌کنه به الله سجده عبادت است بله بکی میشه رکوع چی است عبادت است بکی میشه دعا عبادت است بکی میشه نظر عبادت است بکی میشه قربانی عبادت است بکی میشه خالص به الله میشه اگر تو کلمه لا الهه معنا ایلاعه رفتمیدی. بازمی‌نن الله مخصوص الله جللا جلاله. خب ما نیخیم خداوند عبادت کنم. میخیم تا بخیم کسای رفشنم. دو بخی یک دنکس ایک بر ما بگو. بازم من خدا رو عبادت کنیم. یکی دیگر نیخیم تا تو بسوب لنگ خدا رزد. دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو استادک محباصو کتاب کدام حدیث صحیح از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که اینی عبادت پیغمبر کرده خوب عبادت است نکرده بود عبادت نیست H2O یک دکتر شرکت ما اشتباهی سر این موضوع بحث داشتیم گفت حالا نگران کلمات زیاد میکنن مثلا ما گفتم مامم که الله منت سلام و منک سلام تبارک فی هاد الجلال و الکرام چرا گفت دیگر جملات نمیگی گفتم بخاطر پیغمبری نه من دیگه پیغمبر اینه گفته فرمول داره پیغمبر ما اینه فرمول دین مثل فرمول کیمیا آورد H2O H, H, H یک هایدروژن و 2O دو دو اکسیژن دو هایدروژن یک اکسیژن ببخش خب انال وقتی که اگر یک نفر H2O را H3O بسازه، آب می تا؟ می اگر ايواز H2 H1O بگویم آب می اسلام مکمل است. اسلام قرآن و سنت است. از این نمی که یک حرف زیاد کردی یا یک حرف کم کردی اسلام مکملش شود. آب هم قرآن خداوند متعال نازل کرده بود ایش طور فسان مردم یافتند ای علمه های که آمدن فرمول جور کردن او زمان آدم علیه السلام بود این فرمول پسان آمدن مردم ای رو جور کردن اینالتین هم از زمان آدم علیه السلام بود تا زمان محمد صلی الله علیه وسلم و تا امروز پس ما تو اگر می که دین محمدی را داشته باشیم اونمو فرموله که پیغمبر بر ما چون خود خداوند مطال بر ما گفته که بگوییم که لا اله الا الله و از کدام طریق بگوییم؟ محمد رسول یک کسی میگه ما الله را دوست دارم درست است که الله را دوست داریم و میگه میخوایم که الله مرا دوست داشته باش. و من الله دوست دارم ثابت کن و میگم که الله ما را دوست داشته باشه از کجا به فهم؟ قل إن كنتم تحبون الله فرمول قرآن است. اگر تو الله دوست داری به خداوند مطالبه حضرت محمد صلی الله علیه ای محمد بگو برای مسلمان ها إن كنتم تحبون الله اگر حقیقتا راستی دروغ نمیکنیم، شما الله دوست دارید، فت پس به این مطابعات ما را بکنید. چه قسم مطابعت بکنیم؟ دیگه مسلمان دکه رهبر ضرورت ندارد. شاید که رهبرایی که رهبرایی دیگر کردی ای گریتی، این را کرد دیگر، از کسی بارشی اگر اگر پایزا دادی، اگر دلار دادی، اگر کامکوای دادم، بازوها کدیت تام خراب میکنند. اگر رهبرت احمد و محمود و کلبی و مقصوده جور کردی، یا باز خراب میشن، باز کاتژیا تام خراب میشه. میگن اگر رهبرم خراب شد، که ما خراب شدیم. اما اگر تو مطابق قرآن رهبرت کیه ره بگیری، والکوم فی رسول الله. اوسوه حسنه اوسوه فقط مسلمان دیگه اوسوه نداره راهبر نداره راهبرش محمد صلی الله علیه و سلم است خداوند میگه برشان که این کنتم حبون الله اگر شما الله رو دوست دارین پس متابعت کیر بکنید متابعت ما را بکنید اما متابعت کیر رسول الله صلی الله علیه وسلم که گفت یک خط دعا دادت یک خط دعا گو دو خط داره دو خط دعا گو دو دو گفت نماز فرض صبح دو از دو رکعت قبول کو گفت نماز فرض پیشین چهار رکعت از چهار رکعت قبول ازین زیاد کو نه کم کو خب این خود فا که اگر ما خدا رو دوست می داشته باشیم باید چی کنیم از پیغمبرش سلام از تاریخ پیغمبر استفاده بگیریم این الهمه که خیم میخوایم که خدا ما رو دوست داشته باشه میخوایم که کی ما رو دوست داشته باشه چه قسم باویم که خدا ما رو دوست داره عینه بوایت شریف است میگه قل ان کنتم تحبون الله فتبعوننی بگوبرشوار که اگر شما الله دوست دارین مطابقت مرا بکنید چمه گات یو الله بس الله شفرت و اسفرش یعنی اگر خدا رو دوستام داری پیروی هست کی بگو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اگر میخوای که الله ترا دوستام داشته باشه پیروی هست که از کی بگو از باخره مو و این خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام راهبر و معلمی بود که از خلافت شروع تا تحارت ما شما ملوله سر که درس به خاار شریفه میدندم این حلقه به خاار شریف ما شماما دییم که حتی در دین اسلام چیزهای بسیار عادی که در نظر معوتت او را هم بر ما دست دادن. تشناب چه قسم برند به شاب چه خزم باید بگیرن بهول با خدا چه قسم معافزه بکنن کلگپ های خود ریزه میدن می می می تا پرزگ خود خود, خود معتر هم بر باوت از متر دینه همون پرزگ های خود خوش را پیاز برازده که اگرعنی پرزگک ها مرات نکنید پنچر میشنند. بسیاری وقتا یک نفر خوب تحریکت دارن لیکن در دا ایش یک سنجاق رفتن پنچهر است خطب محترش نمیره میگه کل محتر چی پنچهر کرد یک داره سنجاق در دا دینید سنجاق داخل نکن در دا دینید اگر سنجاق داخل کردی پی پنچهر بیشی بسیاری کسی که پف شدار پف شدار پندید پندید بودید یک سنجاق رفت از آسمان افتم خراب، افتاد در زمین ما داریم در دا فانستان سکود کن، سکود کرد سکود کرد این ها چیست؟ این کنتم الله فالتبیعونی یحبیب الله بناء ان خلاصه کلمه لا اله الا الله چیست محمد و رسول الله کل درس ما سر چی میچه خیف؟ الله لا الله محمد رسول الله که انسانی که لا اله الا الله و محمد و رسول الله رو بشکل درست میخونه اول کار را میکنه که پیغمبر برش گفتن و او عظمت خدای عظام جل در قلب خود جای میده باید عظمت خداوند دیگه هیچ کس عظمت نداره دیگه کلی که مخلوق است کلی که عاجز است کلی که ناتوان است کلی که به رحمت خدای عزوجل محتاج است اگر ملائکه هم از رحمت خدای عزوجل محتاج است اگر پیغمبر است هم به او محتاج است اگر ولی خدا هست هم به او محتاج است اگر هر قوی و هر کسی که باشه به رحمت خدای عزوجل محتاج است بناا اول باید انسان عظمت خدای عزوجل در قلب خود جای بده و با غیر از عظمت خداوند عظمت بزرگی کسی دیگه در قلب خود جاید. اینات دیگه کلهگه مخلوقات دوز داریم مخلوقات، تو رام دوز داره او رام دوز داره پیغمبران رام دوز داریم اولیاء الله رام بلند است سن سالو براده او تو رتبه بسیار بلند است خیمه را از خانه میکشی تو رتبه بلند است تو جان خالص باش مکیده تو بده کجا سم درید مبارک تر بشی بعده پایین نکش اما تو نگو اما تو اگر جنده خامسی پیش خدا هستی پیاده هست. کل ما پیش خداوند مطال جل جلاله عاجز و بیچاره از این خاطر ای اصل الهه الا الله و محمد رسول او که ما تمام زندگی خود به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر ما زندگی خود مطابق طریق پیغمبر بسام ایار بکنیم ما مسلمان هستیم که کلمه را حقش ادا شدیم چه قسم حقش ادا کنیم که چنیکوری چنیکوری خدا اسلام نیست عروسی نکاح اختیار همسر مرگ زندگی پوسان کردن بیماری كلهش باید مطابق طریق پیغمبر بسام بسان بکنیم که در این قسمت پیغمبر سلسلم چی میگم؟ چون ما شما احادیث خانیم که پیغمبر سلسلم از خلافت از مسائل سیاسی بسیار بزرگ گرفتن تا بسیار مسائل کوچک خورده که حتی در تشناب رفتن در دا تشناب داخل شدن در دا تشناب هست کلش پیغمبر سلسلم بر ما دین مکمل و دینی که خداونگ کامل ملتولگم دینکم اینه بر ما داده سبحانه را بکره بلانزد موسیفون. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلوۃ والسلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین و راقبت المتطین و الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و حمد مرتبی دیگه بر خود دعا میکنیم خدای ما را ببخش خدای ما بنده های گنادار را جز بیچاره هستین الای توبه کردیم الای نمیفهمیم خدایا تو بر ما اول عقیده توحید صحیح بر ما خدای یاد بتید الای بر علمای ما توفیق بتید توفیق نصیب بکنید که اینا حقیقتاً اخی... عقیده قرآنی رو بر ما یاد بده چرا که دنیا که خراب میکنه ما علما مو خراب میکنه موت العالمی موت العالم من عالم نیستم این که عالم هستن اگر حقیقت و قران را نگوینم ما اسم کتابی میگیم خدای پاک اول بر علمای ما توفیق نصیب بودی که عقیده قرآنی رو بر ما یاد بده عقیده که رسول الله صلی الله علیه و سلام آورده اون رو بر ما یاد بده خداوند ما هم بیچاره و مسکین هستیم خدای پروردگار تو پروردگار ما سی ما را به گناه های ما نگیر اگر کدام گناهی هم میکنیم به خاطر اشتباه و بیچارگی واجزی ما سن بر خاطر یادی که توغیان و سرکشی بکنیم پروردگار اشو هدای مسکین و بیچاره فلسطین خدای تو به شهادتشان و برگاهی قبول بکنی خدای مسلمان را توفیق جهاد، توفیق مقاومت، توفیق گفتن حق، توفیق استاد شدن در مقابل باطل نصیب بکنی خدای کسایی که ظالم هستن متجاوز هستن قتل میکنند. خدای اینها خود تجاوز ها زیاد شدن پروردگار ها